رسول الله را عالیه طیبین الطهین المعصومین الله سدد مشاعر عادل مشمین. الله اللهم سرنا جمیع مشاعری. ورحمت بر رحمتی آرام رحمان خلاصه صحبت مرمو استاد رو و دیگرانی که در این جنگ دوستند رو چطوری و توضیحی که ما از هرمید مناشه کلی در هر بحث بود مثلا مرموستات میپهندن که در تشریف ظهورات و که زیر مناش اوضاع لغویی رجوع به کلمات اهل لغه میشه به شرط تعدد و حضالت این تفکر و همیچه این تفکر بعدی که مثلا تمثل که به اشماع که کاشف تربطی باشه از قول محسوم سامان با هده و صورت مهمی بر این تفکر که ما همون راه رو که در چایی دیگه برای تشکیف و موضوع داریم اگر در اوضاع رغمی هم به کار ببریم کار میکنه یعنی جهت نقطه خاصی نداره مثلا ما اگر کنیم بشناسیم که این مایه مثلا خن را یا بود اگر دو نفر عادل شهادت بدن ما ترد بودن با قبول بکنیم برای رسول برای ما پیگونه حتی مثلا زن نمیتیمانی به خلافش داشته باشیم خب ترد بود داریم ترد بود شرعی داریم که اون مایه اجتناب کنیم ولی رسول نگیم دو نفر عادل شهادت یا بنا بر قول خود ایشون خبر باقیه یعنی اصولا تفکر رو تنمون مکنی اون خیلی تفکر مهمتره تا حالا اون از در باب ظهورات هم از این راه وارد شده دو نفر آذر شهادت دادن در روزن پر ایمن یعنی اونتون ورد شده برای این اینا تصور اصل ریشهی فکر رو بکنیم اگر دو نفر آذر شهادت دادن ما تحبت داریم که تحبت شرعی داریم که بگیم این لحظ مثل یک موضوع خایدی مثل تشکیز ما یاد خادشی این لحظ رد شده برای این معنی و اگر این وقت رو تشکیز دادیم به برکت اصالت الحقیقه اگر در بران استعمال شد و قرینه ای برخلاف ندیدیم میگیم حملش می کنیم بر همون معنایی که دو نفر حاضر شاهده حاضر دو نفر حاضر شاهده دادن پس مراد از غنیه همون معنایی که در این خلاصه این تفکر این تفکر اگر سیر دقیقش رو تحقیق بخواییم بکنه اینه به نبار از اون به برکت یک تعبود تعبود ما بگیم که معنای لغتی رو کشف بکنیم زمینه بکنیم به اصال, اصال حقیقه اون وقت این میفهمیم که مثلا آیه مراز اینه استدلال میکنیم زهود منعقض میشه و استدلال میکنیم به آیه در همون معنام این خلاص اشکان ده هیبر اینجا بود که معلوم نیست این های شرعی در موضوعات خارجی خلاصه به این صورت نگفته یعنی تحت بحث رو عوض میکنه مضمونش یکی اون یه ساعت دیگه نشده اشکالی که به ذهنی اومد این که این رژش درست نیست مشکل سر اینجا است اصل این رژش که ما بخوایم با تعهد معنای موضوع در رو پیدا کنیم به برکت احساس و لحقیقه اون هم در بره. همون نعمل بکنیم و نتیجه گیری بکنیم در به خاطر اینکه اونی که ما در موضوعات خارجی داریم که توضیحات ایستابق گذشت از تردی ما در منحلی تنکی دو مرحله داریم یکی کبرا یکی صغرا یکی کبرا که مثلا خم نجسته این با در در در بیاد یکی صغرا خارجی که این مایه خم این توضیح مقدس هم. فرس مثلا بنابرای مشروعه مثلاً بین علماء خبر حضر رو علماء سونی هم. یا خبر سقه رو یا مثلا خبر فرس با یک اوساف معینی رو شعال مقدس در کشفیس خبره خود جد باز هم در کشفیس صبره پس این یعنی کلام حدلن رو شعال مقدس خود جد این معبول این حرف مشکل نداره از داره این مشکل نداره در باب زهورات روی معنای ما که باید انعواد ظهور بشه و این زهور هم باید در حد تفیم و تفهم باشه یعنی این ظهور باید یکی حدی دارسته که متکلم و مخاطب هر دو تفهم و تفهم بکنن و اون توضیحی که داریم من وقتی میگم آقیام ارازه کرده از آب مایه ماهیم و می‌تونم مخاطب هم از ها همین معنا رو می‌تونم مخاطب هم همینطور هم می‌گه از لفظه‌آ این معنی رو می‌تونم هم می‌تونم که متقدر این اعراضه رو کرده خود به قدر اون ظهور کلام یک امر غرفی اجتماعی به اعراض ظهور و لذا ممکنه از در مثلا فرسون غنیمت به معنی غنائم دارفت باشه اما در خصوص اینجا با عراهیی ای که از صحبت که شده و این ظهور شده مطلق خواهده منبالیسان ارز کردن اینی که در باب ظهورات دنبال احواد ظهور برای کلام هستیم و این احواد ظهور اصولاً از دایگه خیل خارج خیلی نمیاد بیاد ظهور رو در کنه احواد ظهور هم رو اروپی هم رو حالایی. اصلا قبل از دوره ایت به و این انقاض زهور اگر یکی از مقدماتش برده کران گفتیم اما حسورا در دوره تبد شرعی نیست این انقاض زهور در یک مرتبه اصطباع در آقود این تبدی متفقه انجام من شرعی، کاریو این متفقه انجام منظورم من یک تبد شرعی کاری رو کنم این تبدی متفقه انجام گرسه این درست نیست نمیشه اثبات بکنید برای به نظر ما با حصول اغدایی صرف مثل اصال تردم با این حصول هم مشکلی اول گذاشت ما باز کردیم به مقلی انحال زور خصوصا نسبت به افکام قانونی نسبت به افکام مثلا فرسان اقایلی مثلا که به افکام اقایلی بناشون اینه که اگر کسی مخالف با یک ظاهر امر روشن و واضحی مخالفت کرد مثلا موجه به کفر میشه اما اصلا مردد بود مثلا ار رحمان ارشت سوا بیان میفهمی که خدا تو عرش تو زمین نیست این موجه به کفر نمیشه آسان برش وارد نمیشه در مورد قانونی ارز یکی از مساله که در مورد قانونی خیلی مهمه قانونی همیشه باید واضح باشه مثلا یکی تدیبین قانون الان همین که متن قانونی باید واضح باشه چون اگر واضح نبود مرضی تنجز نبیاده اینه خجر نیست جزایی آدم وارکتون باشه مرضون شهر رسولی بروره براه هست خب این تصکیل کردن که ما اگر شکی کردیم در پر امتارتن به خاطر فردان نفسه نفسی پیدا نکردم امتارتن نفس پیدا کردیم یعنی موجیمه و وساله دادن نفس پیدا کرد یعنی متعارضه اینم یعنی اون نکته اساسی تنجج تمام نشده بحث سر این قسمته دقیقاً اون اختلاط، نکته اختلاط ما رو محکم استاد و آیان آیا با یک اصول شرعی و تعبّد شرعی که در تشکیلات موج موضوع... در تشکیلات موضوعه خارجی هست میتونیم یک امر اوغلایی خارج از محدوده شریعه خارج به شرع لغت کاری به فد نذاره تن لغت کاری به فقه و حالا مبحث اساسی فرآجایی کنیم که استدلال جری بکنیم ضدش میشه آخر کار بی‌اجری نداره ما بحثمون اینه که اون ادله‌ای که میاد میگه تعدد با عدالت کافی است برای اثبات موضوع مثل این ادله قدیمی چون اینه فاضل اورفیدوسه. این بحث این روشن شد نقطه اختلاف اون با بالاوزه این یکی یعنی رو چه فکر بکنیم اینه اون نقطه اختلاف من من با باقی روشه تبیینش تح ازم آیا این اعواد ظهور که معیار تند و جیهته تعمل و این رو ما میتوانیم با حصول شرعی درست بکنیم؟ با قوائد شرعی درست بکنیم؟ ما معتقدیم در باقی فیر ما محن نماغنیتون که در پای آمده اصلا رب که تحبوز شرعی نداره که با در عرف آم و در عرف تکنم کاملا شناسایی بشیم بعد از اینکه که شناسایی شد ما بگیم مثلا این حکم گفت منفجید حکم میکردیش استفاده کنیم با تحبود شرعی که بگیم مثلا اگر دو نفر گفتن غنیمت به این معنا پس ما تحبود داریم که غریمت به این معنا به برکت اصال تعدام و در این هم اثبات میکنیم اینجا همین معنا اراخت شده اشکال رو که نقاض دور با این کاران نبیشه با این اصول این اقعاد ظهور نبیشه پس اختلاف معروف نحوه بعض بس و بسر بعض. بس بلکه بس. بالاتر از این به ذهن من میاد اگر یک اغلا اصولی داشتن اصولی که مثلا پس خلاله این مثلا سفر رستی نه از عدد این اصولی با این اصول هم این اقعاد زهور پشکل چون این اقعاد ظهور رابطه اجتماعی این اقعاد ظهور رابطه اید تفیم و تفهمون بریداده و این اصول هم این را فرامین می کنه یعنی این اصول عقلایی باید بیاد تا بگه اگر ثابت شد که عقلا در احل خبره رجوع می کنن که لغت هم رجوع این اصل عقلایی خوبیه چون وقتی گفت لغت خودشون هم لغت یعنی یک تجربه اجتماعی ده. وقتی اوغلا بنا بشه برای فهم کلمات به کلمات اذه معیینی مراجعه می کنن و اون نتیجه گیری می این قبول داری. این رو میشه قبول کرد یک سیره اوغلاوی میشه و اون مفید زن هم نباشه که فقط خب که قبول نکرده رجوع به خبره یا حاله پس بنابراین خوب دقت بفرمایید این مطلبی رو که ایشون وارد شدن نتایج یک داره و غیر از ایشون ایشون نداره این رو به نظر ما کلا در مطلعی نقص اشکال داره نه این غلطه در از بوده ما کاری به تعارض نداریم با اصول تعبدی شرعی نمی‌سویین انعواد ظهور برای کلام که معیار حجیته معیار حجیت انعواد ظهور و, و زهور. این ظهور باید واضح هم باشه توضیحاتش گذشت. است بالغاضی بله، شده که اگر ما کلام مجمل بود لزوم احتیاط کریں۔ اون امر بذاته نیست اون وظیفه بعدی که فقه بر ما معین کرده اون بحث دیگری که اگر در موردی دلیل واضح نبود و حد به زرور نرسیم شفار بحث دیگری اون رفتی به بحث ما نفیل نداره بین راجع به این قسم بحث دیگری که بعد از این مصرح فرمودن مرحوم استاد قبضت الله مصر و شیخ بحث حجیت اجماع به فرمون اگر سیره شد و حد اعتماد. اونه میشه قبول بکنیم برای زن برای ما پیدا داشت که داریم قبول داریم یعنی بنا این نمیخواد از رای انصداد بگیم این راه رو کافی میدونن مثلا بررسیدن در, در قرن سه دو اول کلماتی که در قرن دوم فرسیون مثلا خلیل گفته کافی و بنا بگذارن بر این اشکال ندارن اما همچی بنایی هم ثابت نیم خود این نه نه نه ا بگیم عقلا در لغت عرب این قبول کردن متعارف لغت عرب این فضا زمینه اون یکی نشون می سفند زن شخصی نه مورد نمی شد تعقل اما این تعقل هم صادق نیست این البته تجویلش ممکن اما سوالت نیست بحث سومیه که ایشون اصلا پنج مورد رو از حجیت ذهن خارج کردن اصل علل حجیت ذهن مورد اول ذورات بود مورد دومش قلوغی بود سومش اجماع محوله اجماع چهارانش مسئله شهرت شهاز فتواری یه هم خبر واحد اصلا این کار رو مروم انجام دادن آینه آن و هم همون رو آوردن ایشون هم مرحث اجماع آوردن اون وقت این رو یک توضیح خیلی مجمل اول ارز بکنم بعد وارد بحثش بشن بحث, بحث اجماع از بحث قدیم در اصوله اینو خوب دقیق بکنیم چون ارزان که در میتوار بعد شواردش هم از زمان و عمر در حقیقت تدریجاً اجماع اهل الله عرض اجماع بزرگانی از, از به اصطلاح چیز قرار گیره یکی از مصادر تشریع قرار گیره اون اجماعی رو که اهل سنت تدریجاً متفق بعد با مخالفت‌های غروش شد عده‌ای هم که رو قبول نکردن مثلا فرض مثل مالک اجماع اهل مدینه رو قبول کرد مثل فرض کنیم ظاهری‌ها اجماع صحابه رو قبول کردن مثل شیعه اجماعی که به پیش باشن قبول کردن برها در میان دنیای اسلام این تحه اول محرف شد که اجماع حجیته اون حجیت هم من توضیحش دادم که از اشتر میگه در مقام سبوت حجیت سبوتی گاهی هم میگیم مسادر تشریح اون حجیت مراد در اون حجیت اجماع جز مسادر تشریحه این همچنان که خداوند بنده منتعال جرد میفرمن رسول اکرم جعل میفرمن اگر مسلمان ها هم جرم شدن میشوند جرم بکنن که ارز کردن از همونیمه های قرنه همود یه چیزی شبیه بود به نام استحصان هم وارد شد این استحصان رو حدیث رو فیمندن اسم که خود محققینشون محترد کلام عبدالله مسعوده مارا اول المسلمون حسنن که آقا اندالله حسنان بعضی هم سرکنه استحصان رو برگردنن به اجماع این اجماع و استحسان اصل اصلش اینجوری بود ما در مواردی که حکم نداریم اگر علماء جمع شدن به یک نظر داده میشه حکم الله الواقعی اهلالله اهل اللعن. مثلا فرسون به این باب مثال در همین مثالهایی که در اون زمان مثلا ادعا میکردن ما راجع به شربخن را حکم نداریم حد شربخن لیکن این میرم اون 80 کردن صحابه و و همونه اجرا کردن این شد اجماع اصلش اینجوری بود مثلا م اگر مجاهدین رفتن جنگ انجام دادن غنایم به اونها تقسیم بشه بعده یعنی که عراق فتح شده از غنیمت ها زمین عراق خوب اون زمین ها حاصل چیزی که شارون مکرونی زمین ها حاصل در این سایشت جزیره عرب که عربستان الان بشه میگن اصلا کلا نهر جاری نداره توی عراق بی این عربستان دور رو برای ایرانه مساعته توی عراق بی این کچیکی کلا کلن از خراسانش و خراستان و شسابه نما دو تا نهر خراستان بود این همه دره و به اصطلاح این ها زمین ها زمین, زمین به اصطلاح با عنوان حاصل خیز و مقصد درخت که خب این بحث شد که بین زمین اراه رو هم تقسیم بکنیم بین جنگزه ها همینون معی به عده ای که نهتحسیم نکنیم این رو ثابت نگه می‌داریم. تو دیوان مالیاتی وارد بکنیم این که اجاره بدیم به مردم مال اجارش سالانه بریم فیه به مال مصمون ها بین مردم تخصیم بشه. خب پسندین همهنگ ایرار شده تو یعنی زمین‌های های درآمز های درآمدی زمین‌های های تسیم و، از درامد او استفاده میشه خراج این درامدی دیگه زمین های درامدی. خب میگن این اشما این حکم رو درست می کنه که هر جا زمین درآمدی بود با اون اصاف معیم خودش این معنایه از این اشما یواش شواش شکل دیگری هم داره و اون اونجای بود که میامد مثلا با یک حکمی مخالفت می مثل متعطان کنه تعالی رسول الله و انه احرمه همه یکی از عدلی اهدستاناتینه که عمر این مطلب رو منبر گفت صحابه قبول کردن پس اجماع شد یعنی اجماع آمد دقت کردیم هم برای مواردی که میگفتن گفتن ش... نداریم مصدر تشریق شد یواشواش باید عمر هم افتاد مواردی هم اگر تشریق داریم میتونیم با اجماع ضرور شده بیریم مثلا میتونیم توانیم الان اگر خوواه اسلام جمع کنند بگه این وضعی که حق پس که مثلا خوربانی ها هر کار رو خراب حرام شده خوربانی رو برداریم مثلا قربانی نکنید یا نداره این استلاحاً اجماع معنی مسئل تشریف حرف استحسان استحسان اساساً چی بود از در در کلمات اهل سنت استحسان این بود که یک چیزهایی به عنوان سنت بین مردم رواج شده رو میکنه نیخواهیم برگردیم با اصول شرعی درست نمیشه اما بین مردم جواب شده اون زمان مثال می‌زنین به اجرت حمامی چون این یا اجاره است یا چیه مثال می‌زنیم حمام یکی دیگه هم حمام میونه که 20 دقیقه مونه که 30 دقیقه اجاره از ما، طرف معین باشه چه آب مصرف می‌کنه ما باشه پول معینه اما اون طرف این با جوابات شرعی نمی옴 مثلا خب ما راه almost اون حسانن مثالی که غالبا در کتاب اصول شما ما هم مثالی زمان حضورش همین الان که رحم خونه میگه پول میگیرن بالون بگیم با زواقه چیز رو گردنم بگیم مارا آقا مسلمان حسنان از اون مثال بارستر مثال همین بانکی معاملات بانکی بگیم بلاخله ولو این مسال بانکی ازش از قرب ما در دنیا اسلام در جمعه اسلامی کشارسته بگیم که افتاده مرام معاملات بانکی گردن و یه زواقه شرعی هم مشکل رو برسش بکنید بگیم با همین قاعده مارا آقا مسلمان حسنان این راهی ک خود اهل سنت هم تمام که استحسان نزدی که به اجماعه با باشتن از مسلمون رو یعنی جمعیه مسلمین بگیریم این توزیع مثلا پس کلمه اجماع که آمد به این معنی که یکی از مسادر تشریه اشکاری هم که دردها شد مثل ابن هرز مثل ظاهری ها اینا آمدن گفتن نه ها فقط حقه خدا و رسولش ایش کس همه تشریه بدنه الان وقت اجماع بشه نرکه چه همین هست امینه اشکال معروب خلاصش ماره آقون مسلمون حسنان کافیی باید باز آقود شهر درست باشه اگر خدا توفیق داده اجمانم به آخر کلمات مثل چون ابن حضر مخادف از با اجماع به شدت هرقدر اهل سندن دنبال اجماع هست ابن حد به شدت با اجماع مخادفه پس بنابراین در اینشون واضحه دیگه این خیلی روشنه حق ت محسوسا ابن حس خیلی شدیدن مراجعه به کتاب و سنت میکنه ما فرقت نمید کتاب منشه همه احکام رو ما می‌تونیم از کتاب و سنت در بیارن نوبت دو چیزی هیچ کس لا حکیت لا قبل احده دونه دونه لا و رسولی هر کی باشه همه اونسان ما جمعه به جمعه جمعه جمعه شد غیر صحابه هم نداره صحابه غیر صحابه بله ابن حاز میگه اگر صحابه بر یک مسئله اتفاق کرد عین ظاهری‌ها این, این کاش این که قول رسول الله هست، نه مصدر تشریعه هم مردی که بعد علمای شیعه گفتن روشن شد پس این طهر از داوود ناری اصفهانی مؤسس ای این مکتب اول قرن سومه نیمه های قرن سوم نیمه اول قرن سوم ایشون میگه بله اگر صحابه یک مسئله رو گفتن چون اگر همه صحابه یک مطلب بگن آزدن از رسول الله گرستن برمیگرده در رسول الله این قبول؟ اما غیر صحابه نوم اهل مدینه گفتن اهل هل گفتن همه این فوقا بودن بگن لا حجیت لقاب در عهد دون کلام خدا و کلام رسول و تشریع الله و تشریع دیگه بقیه حجیت ندارن و این کتاب و سنت هم ناقص نیستن اعتقاد اینه اليوم اصلا شده کن. زیاد تکرار میکنن ما فرض ناپذیر که و ایشو داخل دا الکرماله که نه حزم میگم نه داوود حس این هر هم مطرح شد که اصولا چیزی رو ما به نان اجماع نداریم تا اینجا روشن شد رو. این عرض کرد یواشواش که آمد مثل مالک او یک روایات خاصی تعبد خاصی اجماع قبول کرد مورد در اهل العلم به بردی حاضر یا قبولوا که سابقا هم اشاره کردیم چون مالک نصبه به امام صادق کچی کردیم احتمالا اقبال امام صادق هم نهار کرده باشه. این یکی که حالا بعد توضیح نهارس نیکن اول امام صادق این راجع به این قسمت از بحث در شیعه حالا این قسمت اول تطور شیعه رو که وارد وارده میشن که آمدن مثلا بغدادی ها نه ها یکی از نقاط اختلاف بغداد با اوام همین شد به تدوین فقد پرداستن طرح اجماع روشونه اجماع در بغداد به عنوان مرکز هر سنده و آها و علمه و بزرگان دیگه کاملا جا افتاده بود اینا مثل ظاهری ها اجماع رو در حد کاشف از خور امام اون زمان قبول کردن چون در هر زمان اعتقاد شیعه بود که حجت الاری وجود داره چطور اونها اجماع صحابه رو در حد کاشف قبول کردن؟ اینها هم اجماع صحابه رو در حد کاشف از قول ایمان لذا در حقیقت این طور شد که اگر علماء یک زمان اتفاق کرده، خوب دقیق بکنه حالا علمای اهل سنت یا اهل حل و حالا احل حالا چون عمر اهل حل و احل داشت به اصل انعقادش یه مجلس مشبرتی داشت که حدود سی نفر توش بودن کمزه نفر از کسانی که از مکه آمده بودند مثل خودش و سعد بن رویقاس و طلحه و زبیر و حمیر المومنین که در مکه بودن مهاجرین به اصطلاح 15 نفر از بزرگان و شخصیت‌هایی که مدنی بودند انصار به اصطلاح یه مجموعه 30 نفری با اینها مشورت میکرد نتیجه نهایی اعلام میکرد که مقصد می‌گفت بنا به این شد این زیربنای ورود اجماع به دنیای به اصطلاح احکام و دنیای فکر به اصطلاح. اعتماد برای اجماع. حالا اعتماد برای اجماع، عادتا یه مقدار در اعتقاض و اغلایی هم هست و میمخواست بگیم اینا این رو به صورت یک مصدر قرار بزن همینی که به صورت مصدر بود بعدها به عنوان کاشف حالا فرصیم در زمان سید مرتضا علماء شیه اتفاق کرن برای یک حکمی که مثلا در رواد هم نبوده به اما مثال اینا میگن میگسن اگر علما اتفاق کردهن از این اتفاق میتونیم حجت کش بکنیم نه اینکه این اتفاق فی نفسه حجته. خب درسته اتفاق باها در یک زمان کاشف است از اینکه امام هم موافقه این قول امام. اجماع رو به عنوان کاشف قرار دادن فقط در این شد که حضرات مثلا ظاهری ها اجماع صحابه رو کاشف قرار دادن مال احسان بردین نقطه دیگه داره که برد عرض و شیعه آمد اجماع فقهای شیعه رو کاشف از قول امام اون زمان قرار داد مثلا اگه علمان شیعه در کوفه در زمان امام صادق اگه مثلایی میگفتن مثلا خب حسان کشتر از قول امام میکنه حالا پس در یک جایی بر ما نقل کردن که بزرگان شیعه در بغداد این طور میگفتن. یا خب هر زمانی امام داره ما قائم باشه حاضر باشه این کشف از قول امام و ولذا یواشتباش در میان شیعه دو بحث وارد شد یه بحث اینه که این اتفاق فقا چی شکلی باشه مثلا, مثلا 5 تا فقید 10 تا فقید، همه بدون فقاهای فقط مغدا فقاهای قوم خراسان این اتفاق به چه شکلی باشه چون این اتفاق یک شکلی باشه که تاشف باشه دیگه که مفروضه که پی حجز نیست دو این رابطه بر،, بر چه اساسی وجود داره اصلا حالا پس اون اتفاق همه باهای چه نکته داره که اتفاق باهای شیعه ملازمه داره با قول امام این دو تا بحث هر دو در اصول آمرد اصول شیعه چرا که اذه والقاله به قاضی لطف شده مثل مرحوم شیخ طوسی اذه به قاضی اشتراک شده اذه به قاضی تضمن شده که به راهر وقت علما شیعه جنب بشن چون یکی از اون امام همون زمان بالا شخص خودش رو مخفی کرده. یه دام قاله که بیشتر متخلفین حث شده چون قاضی لطف و اون قاضی تضمن یعنی دو, دو مسلک رو قاضی لطف که یک مسلک و مسلک تضمن رو یا دو خولی اجمال تضمنی یا دو خولی رو نکردن آقا به به حق شد اون به کیفیت هم خب مثلا باید ادهی از علم باشن چین باشن همشون معلومون نسته اگر باشن مشکله توشون مجهولون نستهی باشه که احتمال میمون زمان باشین. یه صحبت هایی اینجوری هم در قرائط اون اجماع یا مثلا اجماع قدم کاشف اجماع متاخلی کاشف نیست اجماع وقتی که شیعه فقط به روایات مراجعه میکرده اجماع بعدی ها اجماعات سید مرتضا هم مثلا به خاطر زیر بنای کذا شد نیست اجماعات دیگر و همون مجرح بحث هایی رو که در دنیای شیعه شد اینجوری شد البته عهد سنت هم راجع به اهل حل عقد و فقها و مثلا خروج در بعد اتا کلمات صادقی نشیدم که مثلا نوشته بود که فقاها اتفاق و این مفتر فقط نسبت داده شده فقاهای شیعه چون مخالفم بحث میشه مخالفت فقای چه تسیر نظرشون حکی است این عقاید اجماعند قراتم این مطلب اینجوریه یعنی اینا اونام از همین شلغ بررسی و انجام دادن این واجبه به بس روشن شد پس اجماع اولی که مطرح شد به اصلاح بعدی های ما اجماع محصل بود یعنی ما میدونستیم که فقها یا علما یا اهل حل و جمع شدن بحث این بود که آیا مصدر تشریع یا کاشف از حجت این بحث در میان اهل سنت به صورت ضعیفی بود چون ظاهری ها خیلی ارزش ششندان در میان اهل سنت ندارند اما شد اما این بحث در شیعه خیلی پررنج شد خیلی بعضی از این اهل سنت کم رنگ. یعنی تقریبا بنای شیعه این شد که اجماع بران اون کاشف حجت نه به عنوان مصدر تشریع تا بعدها باز نقطه دیگه که پیش آمد این بود که مثلا اگر ما جمع نکردیم کلمات رو اما نقل شده برای ما ارزش این, این نقل چقدره این فرق بر بجت بر اجماع شده مثلا ما نتوانستیم بگردیم اقوال فقها ها رو در زمان سید مرتزا جمع کنیم سید مرتزا نقل کرده اگه این شد اجماع منقول در مقابل اجماع اول که محصل بود این شد espèce اجماع منقول باز این اجماع منقول هم چون نقله مثل خود خبر میمونه یه دفعه سیل مرزا ادعای اجماع کرده ابن عزیزه ادعای اجماع کرده فارسی ابن زهره ادعای اجماع کرده علامه ادعای اجماع کرده شهید عب... یعنی خیلی ها ادعای اجماع کردن مثل خبر متواتر لذا مثلا یه من نقل اجماع مستفیزون ادهی نقل اجماع کردن، نه اینکه من رفتن گشتم ادهی کفتم گاییم گر نقل اجماع متواترون این نقل اجماع مستفیزون مستفیز بیشهر از حد واحد خبر واحد باشه اما به حد تواتر هم نرسه مثلا تواتر اگه بناد که مثلا پنجات از بقا نقل بکنم مستفیز با بیست تا واحدم با یکی دوتون این هم بعد اضافه شد این نقل اجماع این در منابع اهل سنت خیلی ارزش نداره نقل اجما چون بالاخره فرض کن میگن اجماع علمای این زمان حجته علمای زمان بعدی میگن اجماع خاص خودشون باشه اگر بگن که دوره قبل اینطور میگفتن یه عبارتی شو باشین. لا رایه المیه یکی از موارد که لا رایه المیه در همین بحث اجماع یکی در بحث تقلیده اگر در تصور اینا این بود که اگر علمای این زمان به یک چیزی انقاد اجماع شد این خودش حجت این مصدر تشریع خود این با این ثابت میشه ولو علمای دوره قبل مخالف بوده لذا نقل اجماع پیش اینها خیلی ارزش ندارد حالا دیگه نقل میکنه علمای در بین مثلا حنفیه علمای حنفیه در قرن سوم اینطور گفتم نه میگفته باشن الان علمای حنفی اختلاف دارند اجما نیست که بحثی اما در شیعه یک نکته پیدا شد چون بنا شد اجماع کاشف باشه چون کاشف باشه میگه اجماع منقول هم میاد همون ارزش رو پیدا میکنه اگر سید مرتضی با اجماع یعنی شی یعنی خبر میده از اتفاق فقهای شیعه اتفاق فقهای شیعه کاشف از قول امامه یعنی شاید چنین تصاحی اجماع بر اون تقریر شما تا این مبنا شد سید مرتضی خبر از اجماع میده ما که خودمون تحصیل این اجماع نگردیم اگر ما بخوایم به کلام سید مرزا اعتماد بکنیم حجت بدونیم چون حجت باید تاثیر شرعی داشته باشه اثر شرعی داشته باشه اگر بخوید به کلام سید مرتضی اعتماد بکنیم و حجت بزنیم به این معنا که انما سید مرتضی از قول امام خبر میده یعنی اجماع منغوله به خبر واحد میشه خبر واحد فهمیده فقط در خبر واحد محمد بن مسلم عن صادق عن باقر علیه السلام اما در اینجا سید مرتضی از معصوم عنوانش دارن چرا چون بنابر مبنای شیعه بر اون مبنایی که گفته شد اجماع ها... کاشف ها از قول امام. این داره کاشف رو نهره میکنه روشن شد حالا که کاشف رو نهره میکنه پس معنیش این که کنم اونگه معصومی جور فرمونده لذا در میان شیعه که بحث دیگری هم مطرح شد که این بحث در حقیقت فرعه دو مسئله بود نه یک مسئله تقریبی بود بر دو مسئله اجماعه منقول به خبر واحد چرا فرق بردا چون این فر بود یک بر حجیت اجماع فر بود دو بر حجیت خبر واحد همون دلیلی که میگه خبر واحد حجته یعنی کسی که ناقل کلام امامه همون دلیل میگه کسی ناقل کلام امام ولو اجمالا بود هم حجت و شاید تحت مبحث اجماع محصل اون دعوای اوله بین ما و اهل سنت یک بحثه مج بحث اجماع منقول به خبر واحد دو تا بحثه تر اون علاف مساله اینه یک اینه که آیا ادله حجیت خبر واحد مثل نقل اجماع رو هم میگیر یا نه چون اگر ادله حجیت خبر واحد تمام شد معنیش اینه که شارع تعبد کرده به ما خبر مثلا عقل یا خبر سقه رو در احکام قبول بکنید خب میگن خبر عمر یا سقه در احکام عبارت از خبری که زراره از امام هم میکنه بگن نه اگر این تعبد آمد خبری هم که سید مرتضا به نحوه اجمال از معصوم نقل میکنه میگیره روشن شد اجمال منقوله به خبر واحد یا نه عدله حجیت خبر واحد اجماع رو نمیگیره مثلا آقای خوبی پنس فیره و اغلاست برون خبر سقه سیره و اغلا جایی که حسیه میگیره وقتی زراره میگه سمیه تو عبدالله یعنی اونجا رو میگیره اما جایی که سید محسزا آراء و علما رو جمع کرده ترس کنیم با مثال آراء فقاهای بغداد رو جمع کرده اون چیزی که حسیه اوش آراء فقاهای بغداده که هم که اثر نداره. اونی که اثر داره کاشفیت از قول امام، این هم هفتیه پس اونی که سیده مرتضا آن خبر میده آراع علمای بغداد درد شد اما این آراع علمای بغداد مصادیق با قول امام با نظر مبارک امام اشکال اینه که ما برسر خبر سقه قبول داشته باشیم خبر سقه در مثل این جه هایی حجت نیست خبره ساید تجا حجید زراره روی خدمت امام بودن امام اینجا فرم بودن روشن کنه مکلب فکر میکنم حدود کار که اجماع منقول به خبر واحد رو هم ما اضافه کردیم رو اینجا وقت در کلمات شیخ انصاری، اگر مراجعه بفرمایی در رسائل، اون رو که ایشون خارج شدن از عدم حجید زن اجماع منقول به خبر واحده یعنی مرموم شیخ انسالی خود بحث اجماع را اصلا مطرح نکردن افتداعن رفتن روی اجماع منقول به خبر واحد و آیا ادله حدیجا خبر واحد رو میگیری یا نه با اینکه معلوم شد که اصلا این طرح بحثی که مرموم شیخ انسالی درست نیستی نرسه طبعه که طبعه بحث اینجوریه اول خود اجماع را ذکر مکنن اجماع روی منقول روی مبانی ما که کاشف میدونیم مبانی رو بگم برد چون اگر اجماع جزا مسادر شد اصلا این جزا عدله عربه میشه عربه اجماع و کتاب و سندن اما اگر جزا عدله شد نه مسادر من اصلا هجت در اصطلاح اصولی و فقیه ما گاهی به مسادر تشریه گفته میشه که ما هجت سبوتی حالا خیلی چیزی اسم شده خود رو بگم. یه گایی باید به معنی ترین مثلا یک خبر زراره حجرته دلیل بر بک دو تا معنی ازموشون حجرت اصفادی شبا شما چیزی ایچ ما در کلمات احل سنت جزو مسادر فشریه الا مثل نه هست الا دو ظاهری ها ایچ ما در کلمات اصحاب ما و ما هیچ باش جزو مسادر نیست اون که یه باشه در قومی ها می قبول نداشتن لذا مثلا شما به یک کتاب سید مرتضا که مراجعه میکنی در هر سفرش اصلا رواده نیمیان زلینا علی, علی اجماع علی اجماع علی اجماع رو کتاب شما در کل آثار صدو یک بار لفظ اجماع رو نمیبین در کلبات سید مرتضا فقط تو عمالی صدو یک مجلسی داره هم لاعلی نشیق ابو جفر دین الامامیه تحبیر اینه که هم آراء شخصی خودشه در اقدره از خطور متاخر همین دینن امامیه بزن شیخ صادم در واقع اشماع کرده <تصفيق> شیخ صادم طلب اشماع رو بکار رو بیداره این مطلب که البته ما بین مطلب بغداد و قوم بود اختلاف اونجا بود این بعدها مخصم با آمدن شیخ توسیه مقدار خابی اون شدت نظام دو مرکله در قرنیازدان ترسل مولا محمد این استرابادی اصاره شد دو مرکله رو افساد. انصال مکتب اخباری یک نقاط اساسی اختلاف با اصولی داره. یکی از نقاط اساسی که بعد مالا و هم خیلی تأکی کرده هم دکن مثلا اجماع بود استصحاب بود زباهر کتاب بود که خوندیم سابقا لذا به شدت اخباری های ما مثل ظاهری ها به دنبال این افتادن که مدرک فقط کتاب است و سنت اجماع و عقل که اصولی ها میگن قبول نداریم مخصوصا این اجماع و هر هم در کلمات علامه و دیگران آمده بود اینا میگوتن قبول باز دو مرتبه از ده هم و 11 این دعوا دو مرتبه زنده شد اصلا به شدت شد مثلا اول شاید حالت دعوایی نبود اما بعد دیگه به دعوایی که اصرار زیاد این اینکه ما اجماع را قبول نکنیم و اصولی‌دشی هم که اومدن مثلا مرحوم به بهبهانی و باز روفته بحث میتونیم ما رأی علما البته اذکر کردم مولا محمد امینی استرآبادی در همین فیواده مدنی خلاصه‌ حسابش رو کنیم که دو جا گفته ما اجماع قبی یکی فتاوای قدما خود ایشان استثناء میکنه میگه چون میدریم قدما فتاواشون عین نصوص اینو قبول میکنه یکی دیگر میگه حالا من یادم راستش قرض قرض و بعد این مطلب باز دو مرتبه دعوای اصولی و احوال سر کلمه اجماع پیدا شد پس یه بحث خود اجماع ما را جمع آرای قغل علما را بکنیم فقار بعدها بحث اجماع منقول به خبر واحد پیدا شد که تفریق بود در دو مسئله یعنی می آمدن می ما ما برفرد هم اجماع را قبول بکنیم اجماع رو چی نغل کرده؟ سیل مرتضا یک نفر نغل کرده این اجماع منغول به خبر واحد آیا حجیت داری یا نداری؟ ما خودمون تحصیل اجماع نکردیم بنابراین امامان گفتن همون عذله ای که میگه خبر واحد حجت اینجا هم نمیگیره این سیر بحث روشانشود شیخ انصاری توی این مسئله مساله این زاویه وارد بحث شد من مقدمات اون قسمتای دیگارش فایده ندشته بنابر مبنای شیعه یعنی بنابر مبنای شیعه اجماع منقول خبرم با خبر واحد ساقط توی بحث میتونن بحث کنه چون ما مثلا بعد از سید مرتضی مثلا فقها اختلاف داره میگه سلموزه دای اجماع کرده این دای اجماع قول امامه بروشن شد مرحوم استاد هم بحث الان از ما بپرسن ما اصلا بحث رو اول رو اجماع محسر میبنیم بعد سرهن اجماع منغول مرحوم استاد بفاقل شیخ انصالی بحث سال خودجی اجماع منغول به خبر واحد، هستالی وجود نداشت بحث چرا میشه ما هستال پیش لذا و ایشون بعد اشکال که و نده انصب تأخیر حاضر بحث خیال که این بحث و اصولی بوده نبوده این کاری بوده که شهر کرده انده هست حجی از خبر الواهر بعد ایشون میشه این سه چار سهر نیستم نه، امروز سهر هست درسته اما انصافا در اینجا البته مرحوم شیخ خطه الله هست بعد از اینکه حدود یک چپونی درباره اجماع محقق یا بیشتر صحبت می‌کنم شاف قدیم رو میگم من شاف جدید بعضی که کتاب کشف الغنای مرحوم شیخ اسد اللہ خسری رو می‌بینم که کتاب خوبی است فقط این کتاب بدع عباراتش کنه بسیار کتاب خوبی در باب البته اگر خوش عبارات نوشته میشد و روی شواهد تاریخی بیشتر تاکید می‌شد بسیار کتاب مفیدی میشد بعد شیخ مثلا حدود ده 15 صفحه نشردم خلاصه این کتاب رو کل کتاب کشف ردناه مرحوم شیخ اسدالله جوصعی رو خلاصه میکنه و سعی میکنه مواقعی از اشکالات خودشون درمباره بیان بکنن یه مقدار مبحث اجماع شیخ در اینجا کلی فنی نیست این هم که استاد اشکال کرده این تابه که اون کار تندی نبوده اینه باید اول خودیشون اعتراف میکردن که این راه درست نبود ایچون باید میامدن اجماع و اول مطرح میکردن بعدا این رو مطرح میکردن حالا که کاشفه آیا منقول هم کاشفه و آیا عدله حجیل تبرباید رو هم میگیره خود اجماع منقول چه ارزشی داره این حضباب اجماع و سانه مثلا اگر پرکون افقاهای شیئه در زمان سیر مرتزا به این رای رفتن افقاهای بعدی مخالفت کردن اصلا این, این خود این کاشفیت داره از قول امام الا محبول حجیت نقلیشان جای خودش آیا خود این کاشفیت داره میتونیم ما این رو قبول بکنیم یا نه لذا حق در مقام این است که ما اگر بخویم بحث اجماع رو مطرح بکنیم این رویشیه که من عرض کردم اولا اجماع مطرح بشه که اصطلاحا اجماع محصله دلیل حجیتش مطرح بشه آریوزه مصادر تشریعی یا جز ادله تشریعیه یا طرق اثباته این مطلب روشن بشه چه عرضشی داره نقل علما حالا فرسان همه علما بگن بعض از او وارد نقل بشینه به اجماع بمشون و صلی الله. علیه